اسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> فصل في بناء اسمي الزماني والمكان فصل بعدي در ساخت دو اسم زمان و هست وهو من يفعله بكسر الأين على مفعلين مكسور العيني بفرماد اسم زمان و أسفل اسفل مزاره ساخته مشابه و زمانی که فیل مزاره بر وزن یفعیلو باشد به کسر عین اون موقع اسم زمان و مکان علا مفعیلن میاد بر وزن مفعیل هست مکسور العين. این کسره دارد مانند یجلسو که اسم زمان و مکانش شو شاد کلمه جلسی و مبیت از بات یبیتو مبیت چون مزارش بر وزن یفعیلو هست و من یافعالو و یافعلو بفتح العین و ضمیها الا مفعل. و اسم زمان و مکان. اسفايلي که مزارش بر وضن یا یافعلو باشد، بفتح یا ضم عین. اسم زمان و مکان الا مفعل. اون موقع بر وزن مفعل میاد. پس اسم زمان و مکان یا بر وزن مفعل ميان یا بر وزن مفعل. مفتوح العین. كال مذهب مانند مذهب مقتل یذهب مزاره هست اسم زمان می شود و مکان مذهب یقتلو مقتل یشربو مشرب یقومو مقام این اجوفی هست که بر وزن یفلو هست مزاره است. اما اگر مزارش بر وزن یفئلو می بود اون موقع گه مزارش بر وزن مفئل اسم زمان مکانش بر وزن مفئل بود که رد شد مثل مبیت این قائده بود هرگاه مزاره بر وزن یفئلو باشد یا بر وزن یفئلو باشد اسم زمان مکان بر وزن مفئل می آیند مانند مذهب و مقتل و هرگاه بر وزن باشد بر وزن مفعیل مانند ماننده یجلسو مجلس و مذرب پس میگه بعضی کلمات شارز هستند مثل مسجد مسجد بر وزن مفعیل بر اساس قیاس باید بر وزن مفعیل میبود چرا؟ چون مزاره يس مسجد یس جدو هست بر وزن لذا اسم زمان و مکانش بروازن یفعال می آمد می شود مسجد ولی اینا شاز هستن چند کلمه اینا شاز هستن وشنظ المسجد والمشرق والمغرب والمطلق والمجزر والمرفق والمفرق والمسكن والمنبت والمثبت والمنسک می گین چند کلمه که نمبردیم شاز هستن یهش روق. برساس القياس اسم زمان ومكان مشون مش رق كلمات كلمان برشاس حسن وحكي الفتح في بعضها البطيب در بعض يزينها بافته هكاية شده يعني در زبان عرب بافته بكار رفدا واجيزة في كلها وفتحه در تمام اینای کنام بردین بر اساس قیاس جایز هست هذا اذا کان الفعل صحیح اللامی والفا البته میگه این مسائلی که تا اینجا ذکر کردیم که اگر بر وزن باشد بر وزن مفئل میاد اگر بر یزن یفئلو یا یفئلو باشد بر وزن میاد این زمانی هست که فعل صحیح الف و لام باشد صحیح الف و لام باشد یعنی فعل مثال نباشد و ناقص نباشد اجوف که خب توضیحش رد شد اجوف اگر بر وزن یافئلو باشد مزاره اسم زمان و مکان بر وزن مفعل میاد یا بیتو که میشه مبیت وگر بر وزن یفئولو یا یفئلو باشد بر وزن مفعل میان ماننده یقومو که اسم زمان و مکارم شود مقام که در اسبوده یقومو حرکت به مقام داده شده و واب تحرک مقام مفتو تبدیل به علف شده شده مقام مقام شده مقام. أما قوتبوا تمام إين قواعد هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء واللام زمان يسقفيل صحيح الفاء واللام باشد. أما غيره فمن المعتل الفاء مكسور إينه أبدا. أما أجر صحيح الفاء نبود. المعتل الفاء فایش متلود، مکسورن اینوه اودا در این حالات اسم زمان و مکان همیشه بران مفئل میاد مانند وضعه که مثال هست یا یا بعو بران هست ولی اسم مکانش و زمانش بران مفئل میاد مانند موضع وعد یعیدو موعد پس اسم زمان و مکان مثال همیشه وزن مفعل میاد مانند موضع و معد و من المعتلل لام مفتوح ابدا و اسم زمان و مکان معتلل لام یعنی ناقص همیشه فتح دارد مانند اوا یعوی میشه اسم زمان و مکانش معوا رما یرمی مرما یردا مردا همیشه در هر حالت حالتی بر وزن یفعلوا باشد چه بر وزن یفعلوا چه بر وزن جیگار و قد تدخل على بعضها تاء التانیث میگه بر بعضی از های زمان و مکان تاء التانیث وارد می شود کل ماهنتی والمقبره و والشذ المقبره والمشروقة بالضم بعض من هنا الشخص هذا. أسرشون مقبرة مشرقة هذا. إن بود اسم زمان ومكان أز سلاسي مجرد. اما از سلاسي مزيد فيه از رباعي رباعي مزيد فيه تريد ساقط ميشاد اسم زمان ومكان ومن ما زاد على الثلاثة كسم المفعولي ميجا فعل. فيل بیشتر از سه حرف داشت مجرد نبود اون موقع اسم مفعولش چطوری ساخته میشد اسم زمان و مکان به همون شکل ساخته میشد. مثلا از اکرم یوکرمو اسم مفعول رو چطوری می ساختیم یارو برداشتیم برداشت می, می مزمون می آوردیم و ما قبل آخر رو میدادیم می دادیم می همین مکرم هم اسم فائله مفعوله و هم اسم زمان و هم اسم مکان میگوه من مازاد علا ثلاثه که اسم المفعولی اون فیلات که بیشتر از حرف دارند مجرد نیستند حالا چه سراسی مزید باشند چه بالاتر مانند اسم مفعول ساخته میشود اسم زمان و مکان شد که المدخل والمقام و اذا کثور الشعب المکان قیل فی اگر چیزی در یه مکانی زیاد باشه اون موقع برواز مفعالتون درست میشه من الثلاثی المجرد الثلاثی مجرد البته اردون مصبعتون اگر جای سبوع در رنده زیاد باشه پیش میگن مصبعه شیر زیاد باشه مأسده گرگ زیاد باشه مذعبه ذعبه بطیخ کدو زیاد باشه مبطخه قصه زیاد باشه یا همون خیار مقفعه این اگر چیزی زیاد باشه برواقع مفعلتون درست میشه از زیبایی ها زبان عرب هست و انکار غیر سلاسیه فرقه همید امن هست اما اگر غیر سلاسی باشه دیگه برواقع مفعلتون درست نمیشه مثلا روباه زیاد باشه سعله این روبایی سلاسی نیست اون موقع دیگه میگن کثیر سعله برواقع درست نمیشه اینا قوائی بودن که از اسم زمان و مکان آورد باری دیگر خلاصه می اگر فریم مداره بر وزن یفعلو باشد اسم زمان و مکان بر وزن مفعل اگر فعل مداره بر وزن علو یا یفعولو باشد اسم زمان و مکان بر وزن مفعل می آیند البته اگر فاولفل و لاملفل صحیح باشد یعنی اجوف ها و سالم ها بر این وزن میآیند اجوف ها و صحیح ها اما ناقص و مثال داستانشون متفاوت است مثال همیشه بر وزن مفعل میاد و ناقص میشه بر وزن مفعل این بود از قواعد اسم زمان و مکان